بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيو نهومين درساز دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف امام ترمذي رحمه الله وغفر له واسكان فسيح جناته سيسدو چهلو هفتمين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشة ولا صخابا في الأسواق ولا يجذب بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح حدیث صحیحه حدیث ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها که دولت رسول الله صلی الله عليه و سلام الا دو تا چیز رو یاد میکنه فاحش نبود متفحش نبود آیا بین فاحش بودن و متفحش بودن که مبالغه از خوحش از فواحش بودنه. آیا مثل همان چه فرقی با هم دیگه دارن اصل اول فاحش را ما باید بفهمیم چیه تا اینکه برین به بحث اینجا مراد مقصودم و مقصودمون من بدون قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بطن فواحش گناه ها هست اون معسیت های زشت مثل زنا مثل چشرانی مثل عمل قوم لوک این ها اعمال فواحشی عمال زشت و زننده و جایی اون فاحش بودن در گفتاره اونجا کردار بود جایی هم در گفتاره کسی که فحش میده دشنام میده ناسزا میگه این زبان چیه؟ فاحشه به خاطر همین بعضی همیست شیخ خب عبدالرزاق در تفکیک بین فاحش و متفحش از وصفه ام الائشه به رسول الله صلوات که نبودن این را نداشتن فاحش و متفحش بودند شیخ عبد الرزاق عباد حفظه الله میگه فاحش نبود در قولش یعنی فحش و در نمیداد گستاخ و بددهن نبود بددهن و بد زبان نبود ناسزا نمیگفت و نه متفحش بود متفحش در افعاله یعنی اعمال فاحش هم انجام نمیداد بد اخلاق و جسور و یا اون اعمال زشت و زننده که گفتیم از اون اعمال اهل فسق و فجور انجام نمیداد من که اهل فسق و فجور انجام ده چه از اون موسیقی گرفته و شرکت کردن در اون چنان مراسم و چه از ما بقیه از چه شرانی گرفته تا بریم همینطور طور بالاتر عمل قوم و زنا و که آخرشه و اون معاسیه که که بدترین ها هست رسول الله علیه الصلاه و السلام از هر عمل زشت و زننده ای بری بود اخلاق رسول الله صلی الله علیه و السلام پاک زبانش پاک نپاکی نه در افعالش بود رفتارش تعاملش نه با بدخلاقی و تنخویی و تنمزاجی و نه با آن عمل زشت و زننده و نه هم در زبانش با آن الفاظ زشت و زننده از سخنان زشتی که فساق و فجار به زبان میارن از فحش و دشنام رسول الله صلی الله علیه و آله زبانش پاک بود ولا سخابا فی الاسواق کسی که جار میزنه داد میزنه تو بازارها رسول الله علیه الصلاه و السلام مثل اون اعرابی که با بودن و می اومدن به شهر داد میزنن تو کوچه و خیابون یا تو بازارها برای فروختن کالاهاشون رسول الله علیه الصلاه و السلام داد نمیگشتید صداش بالا نمیرفت صداش بالا نمی برد بر کسی صداش بالا نمی برد بازم این مطلب به اشاره خواهیم کرد دوباره خواهد اومد در ضمن شرح. الله جلل وعلا در قرآن از کسانی که صداشون بالا میبرن خصوصا داد میکشن اهل التسخخبن یعنی فریاد میکشن الله جلل وعلا وصف اینچین اشخاص رو میکنه به اولاغ این انکر الاصوات لصوت الحمیر داد کشیدن عار زدن از صفات حیوانات هست مثل اولاغ صلاح عليه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی آروم حرف میزد. حتی قبلا بس شدم در نوع حرف زدن رسول الله عائسته و سلام که با دقت حرف میزد که طرف مقابل بدون چی میفرمای رسول الله عائسته و سلام. و یک حرف را هم سه بار گاهی تکرار میکردن که طرف مقابل بدون رسول الله عائسته و چی میگه؟ ولا یجزی بالسیئه السیئه. آیا کسب رسول الله عائسته و سلام بدی میکرد؟ رسول الله عائسته و سلام جوابش رو با بدی نمیداد. در حق خودش شخصی را مجازات نمی کرد. حالا چون به من بد زبانی و بد دهنی کرده، پس من با بدی جوابش بدم رسول الله علیه و سلام هیچ وقت از خودش انتقام نمیگیره چنانچه اون عایشه میگه و دیگر صحابه هیچ وقت جواب بدی را و بدی نمیداد چون یک حسی هست در ذات ما که حس میکنیم اون جوان مردیه یا اون غیرت که انسان باید عزیز باشه الله فلانی کی باشه به من این بگه من با از خودم دفاع بکنم و رسول الله علیه و السلام خیلی جوانمرتر از ما شجاعتر از ما قویتر از ما بود ولی که نه کسی بهش دشنام میداد فحش میداد ناسزا میگفت که این قد که رسول الله علیه السلام آزار شده ما نشدیم حسن در مکه 13 سال آزار دیدن رسول علیه سلام. ولی شما یک جانه دارید در مقابل اون همه دشنام رسول الله علیه و تسلم از خودش دفاع بکنه دیوونه بش گفتن جادوگر بش گفتن شاعر بش گفتن خیلی تهمت و افترابش بهش بزنن صلی الله علیه و ولی شما یک بارم هم که بیاد از خودش دفاع بکنه بلکه توصیه هم میکرد رسول الله علیه و به بین که احسان داشته باشه یعنی چشپوشی بکنه المؤمن غیر رون کریم مؤمن باید غرار باشه یعنی چشپوشی داشته باشه در مقابل گستاخی و بی دیگران بددهانی دیگران المؤمنو و غیر غیر از غراره از تقافله خودشو به غفلت میزنه میدونه داره اون طرف بیادوی میکنه چیش چشپوشی میکنه غیره و کریمه میبخشه این صفات مؤمنه که الله جل و علا اجازه داده و جزا و سیعتن سیعتن مثلها کسی بهت بدی کرتون میتونی باش بدی بکنی یعنی تو میتونی حق تو بگیری ولی رسول الله علیه و سنت نه تعاملش دردی دیگه بود همونطور که الله جل و در قرآن میگه ولا تساو الحسنات ولا السيئات ادفع باللتی هی احسن شیخ محمد امین شینقتی حرف جالبی داره اینجا حسین در سوره فصلت زمانی که الله جل وعلا و این دو تا آیا رو مطرح میکنه میگه ما دونو دشمن داریم یک دشمن فیزیکی داریم که ملموس از بنی آدم و یک دشمن غیر فیزیکی داریم اون چیزی که دیده نمیده متافیزیکه جن، شیطانه سال نمیبیندش این دشمنه اینم دشمنه چنانچه در تفسیر در سوره فاتره داشتیم این دشمنه اینم دشمنه در تعامل با دشمن فیزیکیمون که میبینیمش چلوونه الله جل وعلا میگه ولا تستوی الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن بدیکارت ادفع بالتي احسن تو بونیکی جوابش بده تو خوب باش هرچند که گفتیم تو جا داره یعنی الله به تجاوز داده و جزاء السيئات سيئات مثلها ولی اگر تو ببخشی اکرام بکنی بدی به اراده کادو بهش بدی حرف خوبی باش بزنی این بهتره چرا فید الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم چون خوبی تو سبب میشه که اون دوستت بشه اون دشمنی و ادات و ستی به این بره این تعامل با هر انسان بدیه که الان نمونه شم خواهد اومد اون به اصلاح اخو العشیره که مثال خواهد زد اینجا در این کتاب امام ترمذی رحمه الله یک دشمن دیگه داریم گفتیم دیده نمیشه هست جنیان و شیاطین الله جل و علم جو و ما ینزغنک من الشیطانی نزغن فسعذ بالله استعذ بالله انه هو السميع العليم ترى چاره جز پناه بردن به الله نداری اگر دشمن شیطان باشه ناکن شیطان هم دشمنیش به ما گوناگونه جای ما احساس میکنیم جای احساس نمیکنیم خصوصا در خونه وقتی هر قدم دو تا شخص به همدیگر دیگر نزدیکتر میشن بیشتر بین زن و شوهر بین پدر و فرزن هرچی اون استکاکه بیشتر بشه، تعامله بیشتر بشه همونطور که در سوریه ساد داشتیم و این کفیر من الخلطه ایلا یبغی بعضهم علی بعض خلطه جایی که شد، مشترک شد زندگی، تجارت، کاسبی در اختلاط، در اونجایی که شراکت پیش میاد، بغض پیش میاد، زل پیش میاد. چرا پیش میاد؟ چون شیطان استفاده میکنه، اینو تحریک میکنه برای علیه این و اونم تحریک میکنه برای علیه این. و اینجا هست که اختلاف شدید میشه. شو شیطانه؟ نزاعات داره و میاد در دل من یه چیزی میندازه، در دل همسرم یه چیزی، در دل برادرم، در دل پدرم، مادرم. اگر از من نتونه مثلاً بهره ببره، شیطان میره تو جلد کسی دیگه. ان شیطان یه من من ادم يجري قدام شیطان از خونی انسان میره. اینه که خیلی باید باشی. در این قضیه خصوصا در بحث نزغات که من همیشه در بحث سوره یوسف گفتم یوسف اعتراف میکنه به پدرش میگه اونجایی که آخر سوره هست میگه که من بعد النزغ الشیطان و بینی و بین اخواتی نزغات الشیطان و بینی اول رو متهم میکنه پیغمبره و بین اخواتی یعنی بین من و برادران و شیطان اینچینین تفرخه انداخ اختلاف انداخه خودت هیچ وقت تبرئه نکو، فاستعذ بالله. ماكون فاستعذ بالله، فقط مجرد این که بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست تو که فکر حالا من گفتم عصبانی بودم و گفتم اعوذ بله من الشیطان الرجیم. نه نه، این فقط با این گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نیست. جو عوض کرده، نشستنی، الله سر جای خودش، الله خشم عصبانیت. اینها داریم تو آداب بحث زمانی که انسان خشمگین میشه. ولی که پناه بردن با الله جل و خیلی بالاتر از این قضیه است. پناه بردن جای نیاز به رقیه است. ما خیلی از حالتا داریم زن و مردی همدیگه رو دوست دارن ولی که کارشون به طلاق میفته آخر خودشون هم نمیدونن آنا این مشکلشون از کجا نشأت گرفته از چه زخم حسادت یا تلس جادویی هم شده باشه یا جن که حریصن بر اینکه مؤمنی آب خنکی نخوره که دشمن ما است ولی که اینا متوجه نیستن زن و مرد متوجه نیستن فسبح بالله و بالله بنا ببر با چی با رقیه خود رقیه کن اون زنم خودشو رقیه بکنه بخونه چون سوره بقره که رسول الله صلی الله علیه و آله تاکید کرده اقرا البقره فإنه اخذها برکه بقره بخونید برکته و الی آخر کمشه توصیه میکنم بهش پس این فسعه بالله را فراتر از این بشمریمش. فناه بردن به الله با نمازه با ازکار صبح شامگاهه محافظت بر ازکار خوابه این استعاده هست این پناه بردن به الله جل و علا هست همون بسم الله که تو سر غذا میگی پناه بردت به الله جل و علا که شیطون بد نخوره صحیح در رزق نشد. نشه که کی میمندی با بسم الله همین تو دمپایی که کی لباس که که میپوشه لباسه بسم الله بگو حتی سوار ماشینت هم میشی ماشینم مرکبی هستی سوار میشی بسم الله کن با بسم الله کارتو آغاز کن بسم الله بگو بسم الله یعنی چی یعنی بنام تو یا الله ما آغاز میکنم و به تو استعانت میجویم از تو طلب میکنم که مرا یاری بدی این گفتن که در ضمن خودش اون سعاده و پناه بردن چیه؟ از شیطان هم بسم الله گفتی این یعنی چی؟ به تو بالله پناه میبرم دارم از تو یاری میتلبم بر علیه اون شیاطین دیگه یاری برای چی میتلبی؟ برای بر علیه اون دشمنانه از جن و انسش این بسم الله. ها. این هست که التزام به سنت التزام به خوصم پایبندی به عبادات ها تا عطا اینا همه پناه بردن به الله جل و علا هست و این هست که اون دشمنی اگر ایجاد بشه بین مادر خانواده در زندگی اون kudrat اگر بیفته یا اختلاف بیفته اون kudrat برطرف میشه و هم دنبال برطرف کردنه چنانچه در آیه قبل از این آیه داشتیم در سوره فصلتی ادفع باللتی احسن یک از راهکارها هستا همیشه با خوبی سعی کن که اختلاف پیش نیاد اگرم پیش اومده سعی کن با خوبی جبرانش بکنی و اون kudrate را از بین ببرید این وظیفه هست چرا شون نزغات شیطانه سریوسف نزغات شیطان میخاد با او اختلاف برسه. بعد یکی کوتاه بیاد، بعد یکی کوتاه بیاد. نزغاته. فمن و واصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين فمنعفَ و أصلحَ عفكم وإصلاحكم ادفع بالله يحسب فأجره على الله بدون کسی که عف میکنه و صف میکنه صفحه جدید صفر خالی صفحه خالید رفت اون گذشته رفت دفتر رو ببند درش. فلان روز این کار کرد فلان روز فلان کرد برادرم مالم خورد پول پولم نداد قرد زدم فلان نکرد ببند اصلا درش صفح وصفح اونم صفحه زیبا جمیل این فه صبر جمیله که دیگه گذشتر رو فراموش بکنی اصلا نگاه نکن که چی بوده چی رفت چی اومد بذار صفحه جدید پاک جدید این صفحه همیشه در زندگیت به روز زندگی کن نه به اون بدیها و خط خوردگیهای قدیم فلان جا فلان چیز شد فلان کس فلان فلان که تو, تو این دیگه خودتو هلاک میکنی خودتو نابود میکنی خودت بعد درد معده میگیری بعد اون درد معدهت میزنه به شونه هات بعد شونه هات میزنه به گردن و گردنت میزنه به کلیهات کلیهات میزنه به کبدت کبدت میزنه بعد آخرام به قلبت که بعد آنژیو بشی فکر کردید اینا مرزا و دردا از کجا میاد همون اعصاب روانی که میزنه به معده بعد از معده هم دیگه الا میپیچه به بقیه بدنت کلاکن یعفو و یصفح بس الله سأصح ميكاد والصف ميكاد صفح صفح جديد يصفح فمن عفا وأصلح سلاحه. نيكيف فقط جزاش ميكاده بل ان أن كسي كي بيش بدي ميكاد بخوبي جوابش ميداد بالابخان بحرف خوب زدان بهدية دادان. إن ادفع بالله هي احسن بخوبي. این صفحه، این صفحه جدید با زیبایی و قشنگی باز کرد. صفحه گذشته را همیشه ببند در زندگیت. این سیرت رسول الله علیه و السلام هست و اخلاقش در تعامل با خصومش، دشمنانش، با کسانی که بهش بدی کرده. سيصدق حديث سيصدق حديث سماه الترمذي رحمه الله مجيد حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ومن عاشره رجالهم يقيد رسول الله عليه الصلاه والسلام هیچ چیزی را با دستش نزاد حتی حیوانات هیچ کسی را کتک کاری نکرد رسول الله علیه الصلاه والسلام کسی را نزاد ما ضرب رسول الله صلی الله علیه بيده شیئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله استثنا مگر در جنگ باشه شمشیر بکشه اون جنگ با دشمنه مگر در جهاد باشه در راه الله جل وعلا نصرت دینش ولا ضرب خادمه هیچگاه رسول الله علیه الصلاه والسلام خدمتگزاری برده ای را کتک نزد و نه همچنین یکی از همسرانش ولا امرا هیچ کدوم از زنان رسول الله علیه و السلام کتک نخوردن با وجود که نه تا همو بودن در یک منزل زندگی میکردن و همو هم معمولا با هم دیگه اختلاف میکنن نمیشه بی اختلاف باشن همونطور که مادر با دختر اختلاف میکنه تو خونه دیگه چه برسه همو نه تا با هم دیگه جمع باشن خصوصا زن و اونم خلیط و شریک تو یک زندگی که با این وجود رسول الله علیه الصلاه هیچگاه دستش بالا نرفته روی هیچ کدوم از همسرانش علیه الصلاه و و رضوان الله عليه اجمعین بعضی ها سعی میکنن که مثلا از اسلام یک چهره خشن بسازن میگن که خب الله در قرآن گفته که ولات تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن اونیکه از نشوزشون از اختلافشون از بدرفتاریشون گلایه دارید حجرشون بکنید و آخرش اول موعظه بدید بعد حجرشون بکنید بعدم کتکشون بزنید رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه خاصی از این و اگر الله جل و در قرآن گفته به عنوان یک راه حل یک راهکار کار، ولیکن خود رسول الله صلی الله علیه و از این راهکار استفاده نکرده با این وجود که نه همسر در یک منزل باشه. نه تا طبیعت و سرشت متفاوت از زنا در منزلش بودن. هیچ کدوم هم مثل هم دیگه نبودن. گاهی نبی رسول الله صلی الله علیه و از خشونت استفاده بکنه. این راه حل نه این که نیست، نباید باشه. از طلاق بهتره. یک جوری اگر کارهای داشته باشه، یک راه حلی گذاشته به اندازش. ولیکن اون چیزی که اولاتر هست چیه؟ عفو و که رسول الله عليه الصلاه داشتن الله من نکرده ما را از اینکه اگه زن بد اخلاقی کنه بد دهنی کنه فحشیوش نمیداد مرد یک کتکی هم بزنه که زن ادب بشه همون که الله در قرآن میگه و جزاء السيئه سيئه مثلها بدی کرد بدی ببینه بدی کرد بدی ببینه برای که تادیب بشه ولی این برای اینکه طلاق نیفته و ما قبل اینم قبل اینکه به اینجا برسیم الله جل وعلا راههای دیگری گذاشته اول چی فيذوهن موزه بشه نصیحت بشه به پدرش گفته بشه مادرش گفته بشه نصیحتش بکنه نشد و روحون رسول الله علیه السلام یک ماه تو مسجد خوابیدن همسرانشو رو حجر کردن یک ماه تا اینکه که قرار خطاب را دلعان میاد التماس میکنه رسول الله سبحانه سهل بکنه با همسرانش حجره یک وسیله هست همه اشتباه ازش رو سر میزنه ولی که قرار برای این نیست که ما از آخر شروع کنیم از کتک شروع بکنیم نه اول تو مویزت بکن تو این راها را بگیر بعدم یه چیزی الان تو ضمن همین چیزها دارید تو همین مسائلی که الان بیان شد نمی کن قرار نیست مردم دخترشو بهت بدن بعد اون دختر فرشته باشه که از آسامان مده پیشه الله جل و علا و بعدم پاک و هیچ گناهی هم ازش سر نزنه کی هست که اشتباه نکنه؟ یوسف علیه السلام با مقامش مقام میگه من بعد نزغ شیطانو و بینی, بینی اول خودش به نزغات و شیطان متهم میکنه دیگه من و تو کی هستی؟ الله جل و علا از ما خواسته که سکونت رو بسازیم زندگی را تبدیل به سکونت بکنیم همونطور که تو از تو الله خواسته که نمازت را با خشوعش تزیم بکنی زیبا بسازی نمازت درست باشه همونطورم وظیفه تو هست زندگی تو هم درست بکنی به خاطر همین الله جل و علیه گفت هن لباسون لکن و لباس لباسون لهون اونها لباس شما هستن و شما هم لباس اونها لباس نیاز به دخت و دوز نداره سوزن نداره نیاز به قیشی نداره که اندازه تنت قیشی بشه زنم همینطوره باید امرو نهیش بکنی اینجاش ببری اونجاش نبری اونجاش کوتاه کنی بلند کنی و بعد دخت و دوزی جوی هم سوزنی چیزی هم به کار ببری جایی خم بهاب رو بکشی جایی حرف تندی بزنید نرمی خشونت همه اینها بلی متعادل نه که زندگیت همش باشه تو سری زدن و سرکوف زدن و فقط ایراد میگرده تو کردی تو نکردی انگار که یک ربات تو خونه زن نه زنم نیاز به خوبی داره یه حرف قشنگی یه عطری یک حرف و سخن زیبایی اون زنم ازتون بشننووه یک. خوبی هم از شما ببینه زندگی باید بسازی درست کنی مثل لباس هن لباس لباسون لکم زندگی باید درست کنی درست شده تحویلت نمیدن هن لباس لباسون لکم یعنی این و جای دیگه در قرآن چی میگه میگه نسائكم حارثون لکم باغه آب ندی چی میشه خشک میشه خب آب چیه شب باید بخابی بغلش هم بکنی کنارش هم باشید اکم حارثون لكم حارسته مزرعته مزرعه باید آبیاری بشه نشه زندگی چی میشه خشک میشه اون زنی اصلا نیاز به این داره نیاز به محبت داره همون حرف خوب زدن همون حرف نرف زدن دقت بکنی در اون مثال قرآنی مثالی که الله جل علا میذاره نسائكم حارثون لكم حارث حرف آبش یه طرفه شوخ یه طرفه زمینی که شوخ زده نشه شخمه می سختم داره سختم هست زمین اگر شوخ زده نشه تو نمیتونی اون دونه ها جوونه ها رو قشنگ بکاری که بیرون بیاد باید شوخ بزنی یعنی چی جایی هم نیاز به اون خشونتی هست جایی نیاز به اون جس مردانگی هم داره نه که زن قوامت بشه الرجال و قوامون على النساء مرد تو خونه تسلیم میگیره بخاطر هم رسول الله صلی الله علیه و آله میفرما و کل کم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته همه شما راعی هستید یعنی چی مرد خونه هستید ولی خونه هستید ولی زن شمایید اید و المرته راعیه في بيت زوجها زن تو خونه ای تو کار تو رو انجام میده برای تو راعی خونه هست کار خونه انجام میده ولی راعی سر پررس اصلی شماید این وظیفه ها رو عوض نکنید. وظیفه که عوض شد زن اومد جای مرد رو گرفت همه کار شد زن این ببر این بخر این نخر این کار بکن این کار نکن تو عروسی ها هم زن تصمیم میگیره بله محرم زن بالا می بره. بله زنم آخر تو زندگی دخترش هم دخالت میکنه و زندگیشون هم آخر خراب میکنه که الان هم زیاده خصوم خانوما با دخالتشون در زندگی دختراشون, زندگی دختراشون دیگه دختراشون رو به آتش می شیطان دیگه. ولی وقتی که مرد بیاد مرد عاقله میدونه چطور تصرف بکنه اونجا چطور حکم بکنه شما قوامید شما مسئول خونه هستید و بدونید اون مسئولیت خودتون و اون مسئولیتی که الله به گردنتون گذاشته از سرپرستی از قوام بودن از اون مسئولیت دخل و خرج کار بکنید زحمت بکشید و اون خونه و زندگیتون بچرخونید و اینجا اُم المؤمنین عاشره دیالنها کمال رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی داریش و سرپرستی زندگیش را داره به ما بازگو میکنه رسول الله علیه السلام هیچگاه از خشونت استفاده نمیکده در تعاملش با همسرانش اسکو تک زده یه چیز دیگه می میرسه نمی تونیم برداشت بکنیم کمال زنانی که الله نصیب رسول الله صلی الله علیه سلم کرده رضوان الله عليه اجمعین الله سهمشون راضی و خوشنود باشه کمالشون بهترین زنان را الله جل و علا برای رسول الله صلی الله علیه سلم انتخاب کرده نیازی هم نداشت که رسول الله صلی الله علیه و آله برنکو تک بزنه بهترین زنان بودن که الله انتخاب کرده و خب بالا نص آیات سوره تحریم قبلا بازگو کردیم دیگه گفتید سوره نازل میشه در شأنشون و در انتخاب الهی که الله جل و علا مقدار كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هاي الزواج وكذا بين كمال الانتخابه سيصدقون أنه مين حدث؟ نمام الترمذي رحمه الله مقويات حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا فضيلة بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار هيسرهما ما لم يكن معثمة حديث البخاري مسلمين حديث ألبت خس ما تعفلش خب الله اینجا ای پس و پیشی داریم خوصاً لفظ اولش ما رأیت رسول الله صلی اللہ علیہ منتصر من مظلمت ظلم حقات این در صحیح بخاری نیست من نر صحیح مسلم آلا شاید روایت به معنا باشه جای روایت خلاصه باشه اینها هست درز محدسی ندیدم رسول الله صلی اللہ خودش و سلم جای خودشو نصرت بده در مقابل ظلمی شده ظلم بشه خودش یعنی کسی پولشو نده کسی صداشو جلو رسول الله صلی الله و ببره فحشی دشنامی بده رسول الله صلی الله علیه و سلم از خودش دفاع بکنه خودشو نصرت بده ما رایت الرسول صلی الله علیه و خودش رو انتصار بده نصرت بده من مظلمه در اون ظلمی که شده چه قول چه فعل ظلم هاقت در ظلمی که رسول الله صلی الله و سلم شدن هیچ وقت از خودشون دفاع نكره الا جنگ باشه و مسئله دیگری که حدیث قبلی داشت ما لم من محارم الله تعالی شيء مادامی که کسی حرامی انجام نداده باشه حرام انجام داد مشروب نوشید؟ سلاخه زنا کرد سنگسار حدود الله را اجرا میکرد حد و حدودی که گذاشته بود عقوبتایی که الله گذاشته بود را اجرا میکرد اما اینکه قضیه خودش باشه شخصی باشه نه هیچ وقت خودش رو نصرت نمیداد تو قضای شخصی دنبال دفاع از خودش باشه و انتقام برای خودش باشه رسول الله علیه و همیشه گذشت میکرد فایذان تو که من محارم الله شی زمانی که حد حرمت کسی میکرد اس حد تجاوز میکرد حرامی را انجام میداد کان من اشد فی ذلک غضب سخت خشقم میشد رسول الله علیه و سلم ناراحت مشهد سخت حرام رسول الله علیه و سلام با شوخی نداشت شوخی باشه غیبت باشه نمامی باشه خبرچینی باشه امروز آنهاش یه کلمه میگه در مورد صفیه امسر رسول الله علیه و انها قصیره قدش کو توه یگی دیدم رسول الله علیه و ناراحت میشه خشگی میشه میگه دیدم رسول الله صلی الله علیه بر من خشگی شدن و به من فرمودن والله لقد قلت كلمه یک کلمه گفتی ای رضی الله عنها یک کلمه گفت یک سخنی از زبانت بیرون اومد پرید همین یک کلمات کافیه که آب دریا را فاسد بکنه آلوده بکنه یک کلمه سخت برخورد میکرد ناراحت میشد یه بار نسبت به اون خدیجه همین حرف را ازش از ذهنش پرید گفت که پیرزنی بوده خب فوت شده یعنی به غیرتش برمیخوره رسول الله صلی الله علیه وسلم در مقابل حد که حرمات یک کسی از عمرز شر عبور بکنه با غیبتی با بدگویی با تمسخر و ریشخندی کوتاه نمیواد نصیحت میکرد و اگر لازم بود با خشونت باهاش برخورد میکرد میگه یک ماه رسول الله صلی الله علیه وسلم منو سرزنش کرد خدیجه با من استاد خدیجه مالشو گذاشت خدیجه فلان کرد خدیجه این کار کرد خدیجه این کار کرد نواصرتم که دل داریم داد کنارم ایستاد مالشو داد تکرار کرد که من پشیمان شدم ای کاش که این حرفو نمیزدم توبه کردم استغفار کردم از خودش میگم نایشه پشیمان شد نصیحت یک روز روز نبوده یک ماه رسول الله صلی اللہ علیه و آله کرد که دیگه این کار ازش سر نزنه و این زیاد داریم در حدی رسول الله علیه و آله مثل قضیه بازگشت و رجوع رسول الله الله علیه و سلم. از حج زینب همسرشه زینب بنت جهش الله جل از اون هفتم عقدش بسته با سهو رسول الله علیه و و سلام شطور صفیه پاش شکسته میشه میاد نظر رسول الله علیه و و سلام میگه شطور ندارم چاره چی بشم زینب تا شطور داشته بعد یلا الله میگه افقری صفیه جمالکی افقری یعنی قرض بده قرض بده تا صفیه سفر بعد میگه و یهودیتک اون زن یهودی و قرض بدم رسول الله صلی الله علیه و سنت حجه البداعه دو هفته مونده که زل حج تمون بشه محرم سفر تو ربی الاول باهاش حرف نمیزنه دو ماه و خوردی باش حرف نمیزنه گفت که دیگه رسول الله عائسته طلاق هم داده حجرش کرد اصلا نزدیکش هم نشود تا اون روزی که قبل از وفاتشون رسول الله عائسته و سلام صلح میکنه کل مال و دارایش میده برای الله جل وعلا از خوشحالیش زمانی که رسول الله صلی و وسلم گذشت میکنه نکن این بهش میگن تنبیه این بهش میگن تربیت تا بدونه تا بقیه درس میگیرن عبرت بگیرن ولی با تو سب داشته باشی این قیومیت ها. این اقتدار و نه بود کسی هم بکنه نه پدر نه مادر نخواهر این زن و مرد خودشون بهتر میدونن نباید کسی میونجگری بکنه میونجگری حالا اگر بحث طلاق و مسالهه بله. ولی ولیکن مرد تصمیمش بر این بوده که اینجا جلو یه قضیه را بگیره حد که حرمتی را جلوش بگیره و اینجا خشم برای الله جل و علا گناهی مرتکب شده بنده الله اللهی خارج از اینکه همسرش هست یا نیستا بنده اللهی را تحقیر کرده حتی اگر کافر بود اراده بر الله بود حق نداریم کسی را بیرش خند بگیریم به تمسخر بگیریم به استحزا بگیریم حتی اگر مسلمان نباشه اینا حقوقه حق تمسخور نداره چون تمسخر اعتراض به الله تو بگی فلانی بگیر حتی اگه یهودی باشه قدش کوتاه انگار که تو به الله که او را آفریده قدش اینقدر قرار داده یه اراده بگیری حق نداری کسی را تاخیر بکنی کسی را مسخره بکنی در رنگش در پوستش در نژادش در پدر و مادرش حق نداری تو اگر این کارو کردی یک کلمه عسا آب دریا رو آلوده می‌کنه یعنی چی خط تو گناه بگردان کشیدی با این حرف زدن با این زبانی که این اینجنین این حروف را بر زبونت آوردی و نطقش کردی پرونده اعمال تو تو سیاه می‌کنی با این حرف سعد بن معاده روزی میاد نزد رسول الله علیه و سلم آیات رجب نازل میشه که چهار تا شاهد باشن خب میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله ببینم که زنا میکنه با همسرم والله هر دو تاشون نفس میکنن رسول الله علیه و سلم زمانی که این حرف رو بشنوه بعد به صحابهش میگه تعجبون من غیرت سعد تعجب میکنید از این غیرتی که سعد داره میگه والله قسم ما يدگ رسول الله صلی و لا انا اغير منه والله اغير منه غیرت جای خودشو داره خشم جای خودشو داره نباید اون غیرتت اون خشم از مرضش هم عبور بکنه بله خشم حق اینجا چون من بحث خشم آوردم بحث تعامل با خشمو بردم لازم هم بدونیم اگر از حدش تجاوز کرد دیگه اونجا هست که دیگه همونتا که به سعد میگه کشتی میکوشیمت قصاصه الا اینکه چهار تا شاهد بیاری که همسراتو دیده باشن که این کار داره انجام میده اون مرده این کارو داره انجام میده چارتا شاهد چار تا شاهد نیاری اونا رو بکشی تو هم کشته میشی این دین الله جل و علا غیرت داری غیرت الله و رسولش بالاتره اگر قرار بر کشتن بود الله جل و علا زناکار را نمیگذاشت برای چهار چهارتا شاهد باشه خودش همونجا هر دوتا رو هلاک میکرد ولی که الله جل و علا فرصت میده به بندهش الله رحیمه رحم میخواد میخواد اون دوتا بنده توبه بکنن فرصتی برای توبهشون باشه چرا شرع جلوبه اشاعه فاحشه و نمیدونم نمامی و خبرچینی را گرفته وقایع بعد چرا به خاطری که جا داشته باشه شخص آبروشو حفظ بکنه توبه بکنه تو وقتی که ابرو آبروریزی کردی شخص شخصو بردی رسواهش کردی خب این چطور میاد توبه بکنه تو رحمش نکردی الله الرحمان رحمش کرده براش چهار تا شاهد گذاشته بعد تو قشنگ راحت همینطوری آبروی مردم با گمان و ظن میبری فلانی با فلان کس ارتباط داره فلان کس این کارو کرده اون کارو کرده یا شینیدی که فلانی فلان کارو کرده میای علنا بازی در میاری نه این کار کار منافقین بود زمانی که با ام این عایشه اینجوری تعاملی کردن رضی الله عنها این نوع نفاقه شارع چارچوبی داره اون خشب چارچوبی داره که در قالب اون چارچوب تو با تعامل داشته باشی و عمل بکنی و ما خیر بین امرین و ما خیر رسول الله علیه و بین امرین الا اختار ايسرهما ما لم يكن معثما رسول الله علیه و بین دو تا فعل اختیار داده نمی‌شد مگر آسان ترین را انتخاب می‌کرد مادامی که چی اون امر منجرب گناه نمیشد یا اون امر گناه نبود اون امر گناه نبود اون کار گناه نبود اگر الله جل وعلا بهش پیشنهاد دو تا چیز میداد دو تا کاری رسول الله علیه الصلاه و السلام آسانترین رو انتخاب میکرد برای اینکه بر امت آسان بشه مثل همون کاری که رسول الله علیه و در معراج میکنن از الله میخواهند که نماز پنج وعده شو بشه پنج وعده هی hey, التماس کردن هی hey, خواستن خواستن تا پنج وعده شد پنج وعده برای اینکه امت نمیتونن تحمل بکنن و این توصیه موسی بود علیه السلام به رسول الله عليه الصلاة والسلام و سلم 655 ام حدیث امام ترمذی رحمه الله مقاله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن عروه عن عائشة رضی الله عنها قالت استذن رجل على رسول الله صلی الله علیه و سلم وانا عنده فقال بئس ابن العشيرة او اخو العشيرة ثم اذن له فالانا له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألمت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه حديث در صحيحين بخري مسلم صحيح حديث ومن عائشة رضي الله عنها وميقول يأتي شخصي إجازة قرف كي بياد نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم نزلشه ده پیش رسلاسا در منظر رو میزنه که بیاد پیشش بشینه کار داره حالا گفته شده که این شخص روی اینه ابن حسب بوده مخرمه بنو نوفل بوده و آخر. اسمش رو امنعاشه نمیگه میخواد ستر بشه ولی خب دیگه بعض از محدثین دیگه اومدن گشتن تو روایت ها و احتمال و این و فلانو. که بدونن کیه لازم نیست که ما کی بدونیم الله میخواد ستر وشه و منو عایشه رضیالله هم میخواد ستر وشه قطعا من اسمش نیویاره شخصی از نزیکان که دور بر رسول الله علیه و سلم بود، از نزیکانشونه نیه از کسی دور نبود که از دور بیاد، از بیرون از مدینه بیاد نه از همونجا، از یکی از نزیکاش کسانی که نزدیک بودن به رسول الله علیه و سلم در زدن رسول الله علیه و سلم یه غیبتی میکنن بیسه خویشیره این خیشه ما انسان خوبی نیست بیسه از بد بودنه بد انسانیه این خیشه ما بد انسانیه اخو العشیره او ابن العشیره این الخیشوند منخیشمون بحث یک از اقوام از خیشانه ثم اذن له الان غیبت کردن اجازه گرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه دادن که بیاد پیشش فعلا له القول رسول الله صلی و آله با نرمی لین نرمی باش حرف میزنه فلما ما خرج میر حرفش تمام میشه با رسول الله صلی و آله میر میرون قلت اومن عشی میگه یا رسول الله قلت ما قلت حرفو یزدی گفتی فلانی خیشمون آدم انسان خوبی نیست ثم الان انت له القول بعد با نرمی باش حرف زدی این نفاق نیست این دروغی نیست اول بدش گفتی بعد باش خوب تعامل کردی اگر بده که باید با بدی جوابش بدی نذاری اصلا بیاد پیشت یعنی ولی دیدم که نه تو با خوبی باش تعامل کردی فقاله صلی الله علیه و سلم یا عیشه این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب اینکه تعامل با این نوع افراد ما یاد بگیرن. این من شر الناس بدترین مردم میدونه که یه نم شر الناس من ترکه الناس او دعه الناس اون کسی که مردم ترکش بکنن مردم رهاش بکنن مردم ازش فاصله بگیرن دور بشن اتقا فحشه به خاطر اینکه از فحش و ناسزاش و بددهنی و بدزبانی و بداخلاقیش در امان بشن شخص بده همه ازش پرهیز میکنن بازم این اومد فرار از چی بد دهن و بد زبان و بد خلق خب اینجا رسول الله علیه الصلاه و السلام یک کاری رو کردن و اونم از باب اینکه تشریع بشه برای ما اجازه باشه اگر اینجا رسول الله علیه الصلاه و السلام این اجازه رو به ما نمیداد یا این کارو کرد اجازه بر ما نبود که به هیچ وجه غیبت کسی رو بکنیم اصل در غیبت حرامه؟ حرامه، حرام الله حرام کرده ولا یغتب بعضکم بعضا بلکه یک جاهای نیاز این غیبت یک جاهای نیازه بلکه واجبه بلکه واجبه مثل اونجوری که رسول الله علیه و تسلم به فاطمه بنت قیس میگه زمانی که دو تا خاصهگار براش میون که معاویه یکی هم ابو جه میگه ما معاویه فسعلوک لا مالله، له فسعلوک درویشیه یعنی اون معاویه رضی الله عنه درویش بود پول نداشت، رسول لوک لا مال له که پول نداره و ما با جن فلا یضع اس عن عاتقه همش سفر میره یا کتک میزنه زنا شو حالا هر دو تا گفته شد خب اینجا رسول الله صلی علیه و تسلم در قالب النصح. نصح نصح این زن داره میگه این دوتا برات خوب نیستن این دوتا تا که خواستگاری که برات اومدن اینجا غیبت برای چیه غیبت برای اینکه این زن فردا لطمه نبینه فردا مصیبت زده نشه اگر رسول الله صلی الله علیه و اینجا نصیحت نمیکرد و دینم نصیحته اگر این غیبت نه انجام نمیداد این زنه آسیب میدید جایی غیبت لازمه مثل اینجا تو باید غیبت بکنی جایی باید غیبت بکنی تا این زنه در مشکلات فردا نیفته. پرد خار و زلیل نشه زیر دست اون شوهر این نصحه حالا هرچند دا ما در عدم مفرد اون جاهایی که نبوی اشاره بهش میکنن در جاهایی که غیبته گفتیم اشاره کردیم حالا من فقط تیتوار ازش رد میشم از اون چیزایی که گفتیم البته این دو تا حدیث بود در بحث استثناءهایی که در بحث غیبت اومده هرچند که فرمودی الله جل و علا هم هست لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهر است از جهاش غیبته الله نمیخواد کسی مجاهره بکنه به گناهی خوصا غیبت مگر کسی که مظلوم باشه خب علما از این آیه و از اون دوتا حدیث این را کردن که اولا اگر حاکمی شخص اومد از باب شکایت غیبت کسی رو دیگر رو بکنه بخاطر اینکه حقش رو خورده درست یک زمین پوله یا هر چیز دیگه هست یا زنی یه شوهری کوتکش میزنه میخواد حقشو بگیره طلاق میخواد بگیره و الی اخر میخواد مهرشو بگیره پیش حاکمی از بابت ظلم زلبه شده میخواد حقشو بگیره پیش حاکم ولی نه در ملا عام نه و با بادگویی غیبت کردن، نه پیش حاکمی یا مشاوری که مشورت بهش بده که بتونه بره مشکلشو حل بکنه دو منکری میخواد انکار بکنه شریه مشروب فروشی معتادی مواد میفروشه درسته که اینجا غیبتش بکنی. پیش اون کسی که بتونه رو بگیره یا اون کسی که صاحب خونه از خونه به اونها کرایه داده سه در بحث استفتا این زنه فتوا داره میگیره فتوا داره میگیره برای ازدواجش و مستشار معتمن رسول الله صلی الله علیه و آله امانت و مراعات بکنه اگر عیبی هست باید بگه به این زن که اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله حقماند داره اعدام میکنه میگه این این عیب داره فلانی هم اونایی برا داره جایی از باب تحذیر هش داره جایی از باب تحذیر هشداره از فکری از شخصی شاید لازم باشه مثل خوارج اشخاصشون شاید ما هم بر سر زبان بیاریم برای رسول الله عمد علیه و و سلم زمانی که عبدالله بن ابی و وسلول تهمت می‌زنه ممنوع ممنی عایشه رسول الله صلی علیه و سلم علنا تحذیر میده ازش جایی خود شخص به خاطر حد که حرمتی که میکنه مجبوری به خاطر دین و دینت در دین و نصیح دینه یه خاصه رسول الله صلی علیه و داره غیبت میکنه یک دینی یه طرف اومده فحش به صحابه میده ناسزا به صحابه میزنه تو نباید دفاع بکنی از صحابه رسول الله علیه صلی اللہ و سلم اسمشو نبری نه این دیگه آبرو حیثیت نداره کسی که اومد علنی کرد منکرش تو باید علنا منکرش و انکار بکنی دیگه بگی که غیبت میشه و فلان میشه دیگه این تعارفا رو بزن کنار کسی تو دین دیگه با کسی تعارف نداره مثل رسول الله گفتم علیه و سلام با عبدالله بن ابی بل سر منبر دیگه اسمش میبره شخص دیگه نهایت حتت حرمت کرده بود در حق ام المؤمنین عایشه رضی الله الان یک شخص هم بیاد حتت حرمت بکنه فرقی با عبدالله بن عبی نداره چه در حق ام المؤمنین عایشه چه عثمان و عفان چه و خطبه و صحابه رضوان الله علیهم دیگه حرمتی نداره دیگه این تحذیر بشه چون تحذیر برای دینه برای حفظ دینه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من اینجا جهره به قول داری میکنی با اون غیبتت به دفاع از دینته پنجم از باب مشاوره هست که اینجا حدیث فاطمه بنت داریم و آخری هم که در نزد محدثین شما الان اسانیدی که خوندید زیاد مثل اعمش اعوار اعما و یا اصلا اینها زیاد داریم که از باب تعریفه درست درش غیبته ولی خب محدثین اجازه دادن از باب اینکه مثلا فلانی نابیدا بوده یا فلانی لنگ میزده یا فلانی کر بوده یا فلان عیبو داشته اینها غیبت از باب تبیینه یعنی که بفهمیم که این سلیمان کدوم سلیمانه یا این محمد کدوم محمده از باب تشخیص گفته بشه فلانی نابینا نه اینکه از باور تحقیر باشه از باب معارفی. اینجا شش جای هن که شارع اجازه داده و در این حدیثی که ما داریم رسول الله صلی الله علیه و آله، چون این شخص از خیششون بوده، داره روش تعامل را یاد میده با منوعایش که چطور با این خیش، خیش خیش چطور با این قوم و خیش، اگر بد بودن تعامل داشته باشیم، چطور اتفاق احسن با خوبی بالا این نفاق نیست این درویی نیست درویی میدونی چی که رسول الله صلی الله من اشر الناس ذو الوجهین بدترین مردم ذو الوجهین میدونی کیه اون کسیه که میاد پیش تو از تو خبر میگیره بعد میره پیش دیگری تخریبت میکنه میخواد زیرتو خالی کنه به قول معروف و ریشتو بزنه این درو هست این درو هست جلوت خوشو بش میکنه بعد میره پشت سرت برای تخریبت برای خرد کردنت قصش هم نصح نیست قصدش اصلاح نیست رسول الله صلی الله علیه و آله اصلاح بکنه میخواد جلو یک امر بدی را بگیره ولی بعضی ها نه نفاق تو دلشونه به خاطر این که شخصی را به زمین بزنه اون نفاقی که در دل داره اون حس دنیا دوستی و دنیا تلوی حالا خصوصا در تجار این زیاد پیش میاد در میان زنات زیاد پیش میاد به خاطر این که شخص تخریب بشه شخص میاد این دو چهره ای رو در میاره بازی میکنه میاد از طرف حرف میکشه به خاطر اینکه شخص را به زمین بزنه حرف میکشه از در دوستی وارد میشه که من تو رو دوست دارم یا من خیلی خواهتم بعد میاد ازش حرف میکشه که ببره حرف این رو پیش طرف مقابل حالا من مکم نیتم خیر بوده میخواستم اصلاح بکنم نه خب تو نمامی کردی خبر از این گرفتی و رفتی و اونجا بردی رسول الله علیه و السلام اگر میخواست اصلاح بکنه خبر که نمیکشه از طرف که نمیواد که دیگه برچسی بهش بزنی اون چیزی که توش نیست یا بخواد حرفی ازش بکشه که ببره تره طرف مقابل بده میگه نه. این شخص انسان خوبی نیست در نوع تعاملش در نوع برخوردش باید اینجا انسان حواسش جمع باشه و با. این حواس جمعی رو به من میده که مازه باش یه کاری نکنی که این شخص عصبانی بشه که بعد بیاد داد و بیداد و فریاد راه بندازه داره یاد میده رسول عزتیه سلام در مقام تعلیم نه در مقابل تخریب اون در مقام تخریب نه تعلیم میخواد تخریب بکنه زیر آب میخواد بزنه فلان مغازه نخرد فلان کس اینطوری فلان کس این فلان کار میکنه 351 و حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا سفیان بن واكية قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی قال انبانا رجل من بني تمیم من ولدي ابي هاله الزوجة خدیجه ويكنى ابو عبد الله عن ابن بهاله عن الحسن بن علی رضی الله عنهما قال قال الحسین رضی الله عنه سألت أبي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانبي ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والكثاري وما لا يعني الله توأخرش كلامنا من لشرحه هم قلت كي بخونام خلي تقول مجهش حدیث ثولانی این سومین قسمتی که داریم می‌خونیم. ابتدا داشتیم حدیث هفتمی بعد در درس 31می داشتیم من بازم و الانم اینجا داریم در 39مین درس. که گفتیم حدیث الا ضعف درش هست ولی خیلی از مطالبش در دیگر احادیث یاد شده. اینجا بالاخره دایی حسن بن علی هست، برادر فاطمه هست از مادر ابن بی حاله که خب واسه رسول الله صلی الله علیه و آله بعد حسینم که رفته شنیده ازش، بعد میره از علی بن نبی طالما می‌پرسه. الان دیگه روایت حسین بن علیه که حسن نقل میکنه حسین رضی الله عنه صدرالشوری علی بن نبی طالب از سیرت رسول الله صلی الله و سلم که چگونگی بوده با مردم سالت و ابی یعنی علی بن نبی طالب عن سیرت النبی صلی الله و سلم فی جلسائه چگونه با مردم مینشسته حدیش تعاملش فقاله كان رسول الله صلی الله علیه و سلم دائم البشر همیشه سرور خوش بود خنب ابرو نمیون یعنی معمولا نه همیشه معمولا اصل بر این بود که رسول الله صلی الله و سلم بشوش بود همیشه لبخند بر چهره بود خشم رسول الله صلی الله علیه و سلم انگوشماره یعنی جاهایی که خشن شدند ناراحت شدن. سهل الخلق اخلاق رسول الله صلی الله علیه و همیشه آسون نرم همیشه رفق را میپسندید و توصیه هم می‌کرد رسول عث و سلام ما کان الرفق فی شین الا زانه و منع میگه رفق همیشه زیبا میکنه و ما كانت شدت و شيء الا شانه شدت و سختی، تندی، خشونات زشت میکنه عصبانیت زشت میکنه انسان رو، کار انسان رو تعامل برادری و خوبت همه چیز را از بین میبره شدت تندی خشونت ولی که نرمی ما كان الرفق في شيء الا زانه زیبا میکنه رفق خوبی کوتاه اومدن بخشش کردن رسول الله علیه الصلاه همیشه سهل بود آسان بود لین الجانب هسه واسوحي رسول الله عليه همیشه با دوربری هاش با نرمی تا میکرد تواضع داشت فروتن بود خودشو بالا نمی گرفت طرف اگر باش حرف رو گروش می زد روبروش میشست قشنگ جلوش حرفش رو میشنید لیسا بفضل ولا غليظا رسول الله علیه و سلم با قساوت و سنگدلی و تنخویی با کسی تعامل نمی کرد اما تا که الله جل و علا میگه در فبما رحمه من الله لنت له نعمت الله برسول الله صلی الله علیه و سلم کنر باشه ولو کن كنت فضن غليظ القلب لنفض من حولك جت تنخوت مزاج بودی به اخلاق بودی همه از می شدن همه از دستت فرار میکردن دست رسول الله علیه الصلاه و السلام تنخو نبود نر بود ولا سخاب سخاب تقفتت وقصد في مشيك وقصد من صوت ان انكر الاصوات لا صوت رسول الله علیه و السلام صداش بالا نمیورد خصوصا اون کسانی که مثلا داد و بیداد را میندازن و دیگه بدتر همه با فحش و دشنام رسول الله علیه و صداش بالا نمیرفت بر کسی که بخواد کسی را توهین بکنه تحقیر بکنه یا زور و بازوش رو به رخش بده دیدید بعضیا یه حس درونی یا اون یک شکستگی درونی داره شخص میخواد اون فقر بچگیش، اون کوچیکی و اون ضعف بچگیش رو جبران بکنه میره بدن سازی فقط به خاطر کی به خاطر چون بچگی کوتاه خورده میخواد بره بدن سازی قوی بشه هر کسی تو کوچه خیابون جایی جلوش قد کرد بزنه کوتاکاریش بکنه نه که دفاع از نفسش داشته باشه نه میخواد قلدور باشه میخواد بره قلدوری یاد بگیره یعنی هدفش اینه هدفش بده ازمون ابتدا رسول الله علیه و با کمال جسمی که داشت قدرت و بندی، درستی که داشت هیچ وقت قلدور نبود سرکش نبود تواضع داشت همیشه لبخند تو چهره بود همیشه نرم بود با دیگران و این چیزی هست که الله جل و علا در قرآنم هم ستایش میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم برش مدحش میکنه فبما رحمت من الله لنت لهم نرمی تو و این رحمت الله بر تو که چنین تو نرم باشی با مردم ولا فحاش رسول الله علیه و سلم فحاش نبود یعنی فحش دشنام نمیداد بد اخلاقا هم نبود چنانچه جن در حدیث قبلی داشتیم که صحیح بود ولی اینجا باج ضعفش ولی خب حدیث قبلی داریم ولا عیاب رسول الله علیه و سلم از کسی و از چیزی عیب نمیگیره گرفت. فلانی اینطوریه، فلانی اینطوریه، این اینطوریه، اون اونطوریه. این غذا اینطوریه، اون فلان چیز اینطوریه. اهل ابتراشی نبود، خصوصا نسبت به خلق الله جل و علا. ولا مشاح. رسول الله صلی الله علیه و سلم شحح نبود، یعنی بخیل نبود. بخیل نبود. نه مالش، نبا با علمش وقتش میداد به مردم، مالش رو میداد به مردم. کریم بود، سخاوتمند بود رسول الله علیه و و سلم. یتقافل عما لا یتغافل عملاش تینجوش خابد رزاق عباد حفظه الله میکه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیرک بود در امورش و این غفلتش از کودنی و از سوسی و از عدم جوان مردیش نبود بلکه رسول الله علیه وسلم یک جوان مرد تیزهوش زیرک بود که میدونست طرف مقابل چی داره میگه و چی میخواد ولی که اگر بدی میدید خودش را به غفلت میزد نه که نمیتونست حقش رو بگیره نمیتونست جوابش رو بده. بوده نداشت رسول صلی الله علیه و آله نه از زور و بازو نه از زبان و از فصاحت رسول الله صلی علیه و غیر از اون دوست و رفقایی که کنارش ولی ولیکن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست داشت غفلت را دوست داشت میدونست که در برش چی میگذره حالا این گفتیم قبلا هم اشاره کردیم رسول الله علیه و توصیه خودش هم می‌کنند المؤمن غرر کریم والفاجر خبء لئیم مؤمن از صفاتش اینکه خودشو به غفلت میزنه و کریمه می‌بخشه بلكن چیه؟ خب او لایمه یعنی چی یعنی نمیبخشه نه رو به غفلت میزنه ریز ریز عیب و ایراد میگیره عیب میتراشه و گذشتم نمیکنه لايمه گذشت نمیکنه عیب عبجو هست یتقافل عما لا یشتهی فقط اینجا تو پرانتز شیخ عبدالرزاق اینجا شرحش نداده حفظ الله الله میگه عما لا یشتهی عما لا یشتهی در شرح بیشتر چیزی بیان میشه که رسول الله علیه جایی که کارش نبود تخصصش نبود دخالت نمی کرد یا جایی که جای حرف زدن نبود حرف نمیزد. رسول الله علیه و السلام خودش رو به غفلت میزد. در اون جایی که کارش نیست در اون جایی که وجهی نداره دخالت بکنه دخالت نمی کرد یتقافل عما لا یشتهی خودش رو به غفلت میزد در اون جایی که نمی خواست دخالت بکنه و اون جایی که نبایدم دخالت میکرد چون دخالت در امر مردمه الا و الا اینکه نصیحت باشه اون مسئله دیگه هست ولی خب اینجا به غفلت زدن در بحث حقوقه ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه انسان تلابي داره لرخاصي دار داره از رسول الله عليه الصلاة والسلام يا انك داره رسول الله عليه الصلاة والسلام بهش بده و انك نداره اگر نداشت بحرف نیکي اسفش رسول الله, الله عليه الصلاة والسلام بار مگاشت باز مگاشت و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ان عمل بقرآن كالله جل وعلا اذ پیغمبرش رسول الله عليه الصلاه والسلام ميخاد و ائمه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم اجاكم نداري ببخشي بدي فقل لهم قولا یه حرف نیکی بهشون بزن یک سخن زیبایی که به دلشون بشینه و اون دلشکستگیشون به اون پانسمان بشه جبران بشه کسی میئوس ناامید از نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم باز نمیگشت همون سخن نیک که رسول الله صلی و سلام و اون خوش آمد رسول الله صلی و سلام و حرف زدنش مرهم دل اون اون نیازمند بود که نظر رسول الله صلی الله علیه قد ترک نفسه من ثلاث المراء والاكسار و مالا یعنی سه چیز رسول اللہ علیہ وسلم تر کرده بودن اهلش نبودن اولی مرا جدال خسومت کردن با این اون دعوا داشتن والاکثار اکثار زیاده از امور دنیا دنبال مال دنیا نبود که اینجا زمین بخرم این فلان ملک بخرم دنبال مال دنیا رسول اللہ علیہ وسلم نبود و لا یعنی و چیزی هم که کارش نبود تخصصش نبود از امور دنیا درش دخالت نمی کرد در باره حرف نمی زد از امور تجارت و خرید و فروش و معاملات رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مسائل دخالت نمی کرد بلکه می فرمودن انتم علی امور دنیا کو به بدنیات ناگاهتری نمی مد رسول علیه و سلم که دنیا یادمون بده اومده دین یادمون بده و ترک الناس من ثلاث سی چیزم میان مردم ترکش کرده بود رسول الله صلی الله و لا یذم احد ولا یعيب میان مردم اولیش یعنی چیزی که ترک کرده بود از هیچ کسی عیب نمی تراشید به کسی رو نمیگیره فلانی اینطوریه فلانی اینطوریه ولا یطلب عورته ولا یطلب عورته نجوش الخالد رزاق حفظه الله میگه که لا یطلب عورته بالبحث والسؤال به خب حرف عامیه همون قسمت عام خب از حدیث را اینطوری به طور عام بیان میکنه دنبال عورت شخص نیستند دنبال اون چیزی که یعنی چشمش به ناموس مردم نیست الا یک وجش ولی خب نه مقصد از این قسمت یه چیزی دیگه هست ولا یطلب عورته یعنی اینکه اون چیزی که شخص پنهانش کرده از امور خودش هیچ وقت رسول الله علیه الصلاه و السلام اون امری که است آشکارش نمی کرد برای مردم میدونه فلانی اومده مشورت داری میکنه یا اشتباهی مرتکب شده رسول الله علیه الصلاه و السلام سترش میکرد افشاش نمی کرد این مقصد از این قسمت از حدیث خیلی حالا در شرح وردن ولا یطلب عوراته یعنی هیچ وقت اظهار نمی کرد اون چیزی که مردم پنهانش کرده و نمیخوان که مردم بدونن حالا بعضیا خودشون حسن تو خونه بلنگو خودشونن خودش همسرش بچه هاش دوا کرده با خانمش؟ بچه‌اش تو کوچو خیابون داره میگه یا خواهرش رفته پیشه در همسایه گفته حالا این بنده خدا حالا یک بار دستش رو خانومش بلند شده آبرو براش نذاشتن نخ زنش اون بچه‌هاش اونم مادر خانومش نه به در خانوم نه برادر خانوم بعد کتککاریشم یک سیرم میکنن بعدم آبروریزی پشت آبروریزی بعد آخرام طلاق جدایی اینکه نشد که حالا یه دعوایی کردن حالا یه جایی هم این مرده یه غلطی مرتکب شد حالا اینجا دستی بلند کرد زندگی بعد از هم پاشیده بشه این بچه‌ها باید از اون پدر محروم بشن از نوازش پدر از مهر پدر. خاطر فقط یک جایی دستش رفته بالا روی اون دختره، اون دختر میگه بچه بوده کتک از باباش نخورده میگه از مادرش نخورده خودمون کم کتک خوردیم از دست مادرامون حالا دخترت فردا هم کتک خورد زندگی رو خراب بکنی خاطر یه دونه کتکه یا نه اصلاح کن نصیحتش کن و اینه از که میگم بحث ستر مردم باید یاد بگیرن نه اینکه مجالس غیبت و نمامی و خبرچینی باز بکنن و ما هم اونجا بشینیم این مجالس مجالس علم نیست مجالس فحاشیه ناسزاگویی بین اونه و غیبت و بهتان و لا الا فيما رج ثوابو رسول الله صلی جایی حرفی نمیزد سخنی نمیگفت مگر اینکه از الله جل و علا در اون سخنی که میگه حرفی که به زبان میاره امید چی داشت امید ثواب و اجر و پاداش و اذا تکلم اطرق جلسه که کانما على رؤوسهم الطير این در حدیث بر ابن و آمده میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قبرستون بودند و با هم صحبت کردن از قبض روح مؤمن و فاسق و فاجر و کافر شو ما نشسته بودیم که ان على رؤوسنا الطير نشسته بودیم خیره نگاه می کردیم مثل که پرنده نشسته از این طرف ادب خود صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رضوان علی اجمعین از این طرفم نوع صحبت رسول الله صلی الله و که طرف مقابل از فصاحت رسول الله صلی الله و آله اونها جذبش شدن و با, با دقت سخنانش رو گوش میدادن چون سخنش از علمه از وحیه و اینجا هم بس میکنه میگه اگر حرف میزد انگار پرنده رو سر طرف مقابل می نشسته سخت با دقت حرفش رو گوش می‌داد فیذا سکت تتکلم و زمانی هم صحبت می‌کردن صحابه که رسول الله صلی الله و سکوت اختیار می‌کردن لا يتنازعون الحديث هیچ وقت اختلاف نمی هیچ وقت خصومت نمی زمانی که نظر رسول الله صلی بودند دعوا نمی و من تكلم عنده انصت لو حتى يفرغ و من تكلم عنده اگر صحبت میکند در مجلس رسول الله صلی الله علیه و همه ساکت میشدن تا اینکه تمام حرفشو بزنه حتی يفرغ حديثهم عنده حديث اولهم یعنی کسی اولی حرفو شروع میکرد دومی حرفشو نمیزد تا اینکه اولی حرفشو تمام بکنه چون اسبقیت باونه اولویت باونه یا بزرگتر اگر حرف میذارد خصوصا جلو بزرگتر بدون اجازهش حرف نمیزدن اول بزرگتر حرف زن، بعد کوچکتر یاد حکم میم منه و یتعجب میم منه اگر یه چیزی اونها ها رو میخندن صحابه رسول الله صلی الله و وسلم رسول الله اگر چیزی مورد تعجب اونها ها میشد رسول الله علیه و سلم ون جام تعجب میکرد باهوش وی اصبر لال غریب علی الجفوتی في منطقه و مسئله اگر شخص غریبه می اومد نزد رسول الله صلی الله و سلام خصوصاً بادی نشین‌ها که بالاخره خوب سنگدلی و خشونت درشون هست که رسول الله صلی و سلام می فرماید من بدا جفا کسی که در بادی زندگی بکنه این جفوت و خشکی و تندی درش میاد رسول الله علیه و سلام صبور بود بر اون کسی که اینجنین خشک بود فی منطقه و مساله در اون حرف زدنش و سال و حاجتی اگر داشت حتی انکن اصحابو لاستجلبونهم غریب بود غریبه ها را صحابه رسول الله الله علیه و وسلم میوردن نزد رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیشترشون راه این قضیه را بیان کردن که حسین شه عبد الرضا حفظه الله برای اینکه صحابه خودشون نفع ببرن از سوال اون غریبه ها اگر غریبه ای می اومد میوردن نزد رسول الله صلی و وسلم برای فایده ولی یه چیز دیگه هم هست اینجا بحث اکرام اونها هست و کرم اونها اون چیزی که الله تکریمشون کرده با رسول الله صلی و وسلم میخوان دیگرانم هم فیض ببرن میخوان بیان سخن رسول الله صلی الله علیه و, و بیشترم شاید این باب باشه یعنی باب کرم اصحاب رسول ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه فأرفدوه فأعينوه أقر كسي حاجتي داش در داش كمكش كش بكون دياريش بدي در خزي حاجتش ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ خب إن چندو شرح داریم یک شرح اینجا شیخ عبدالرازق عباد حفظ الله میگه ولا يقبل الثناء الا من مكافئ من صنع اليه صلى الله عليه وسلم معروفا كافاه باحسن منه او بمثله یعنی اگه کسی کادو هدیه چیزی به رسول الله صلی میداد یا حرف خوبی میزد رسول الله صلی به بهتر از اون بهش برمیگرد اون با هدیه کادو خب اینجا یک شرحیه یک شرح دیگه هم که هست گفته میشه اینجا ولا يقبل الثناء گفته شده ثنا اینجا maksud پاداشه هدیه هست کادو هست اگر کسی به رسول الله صلی کادوی میداد قبول نمی کرد الا اینکه رسول الله علیه و السلام بتونه از توان بازگشت اون کادو بهش بر بیاد یعنی اون خوبی که بهش کرده با خوبی پاسخش بده بهش یه چیزی داده بتونه برش بگردونه اینم بازم السياق از, از مطلب شاد یکم به دور باشه سومی ولا يقبل الثناء الا من مكافئه این وجهه تر شاد باشه ولا يقبل الثناء ثنا مدحه سیچویشن کسی تعریفی تمجیدی قبول نمی کرد یعنی کسی بیاد مثل شعرامی و مثلا پشت حکام تعریف و تمجید میکردن تو یه چیزی گیرشون بیاد رسول الله علیه الصلاه والسلام کسی تعریف و تمجید دوست نداشت بشنوه الا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش داده کولی، مالی، کادوی داده حالا میخواد شکر بکنه، بخواد تشکر بکنه الا من مکافع، یعنی کسی مکافعه شده اینجا سنای اون، مدخ اون را رسول صلی اللہ علیہ در حق خودش میپذیرف ولی قبل از اینکه چیزی بهش بده، بخواد مدخ بکنه اینو قبول نمیکرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینم این وجیه ترین این, بجیه این شرح بر این قسمت از حدیثه آخرین قسمت از این حدیث. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام اجا كسي حرفي ميزاد حرفش قد إلا إنك حتى يجوز يعني حدش خارج بشه ديگه پر حرفي بكنه ديگه بيفته نمامي فيقطعه قات حرفش بنهي نهيش ميكر اين حرفت جو غيبته او قيام يا طرف دست نميكشيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس را خب این خلاصه شرح و این حدیث هرچند که جله مطالب را میتونیم در احادیث دیگر بیابیم ولی خب اینجا چون امام ترمیده رحمه الله اینجا آورده بودن دیگه گذرا ازش رد شدیم سبحانکاللہ بحمد که سبحانکاللہ بحمد و صلی اللہ علی محمد, محمد و علی محمد